سوره ماعون بسم الله الرحمن الرحیم بنا الله که بخشاینده و با رحمتر است ارا ایت الذی یکذب بالدين آیا ان کییامت را انکار میکرد دیدی فذالک الذی يدع الیتیم او همان است که یتیم را با قهر از خود میراند و لا یحب علی طعام دیگران را بر اطعام مساکین تردید نمی نماید فوینلی المصلی هم عن صلاتهم ساهون پس بای بر نماز گزاران همانهایی که نسبت به نمازشان سهل انگارند الذینهم و همان کسانی که ریاکارند و دیگران را از نعمت های زندگی منع مینمایند راست گفت خداوند بلند مرتبه و از این کاری از مؤسسه قیامبر مهر و رحمت صل الله علیه و وسلم